سلام به شنوده عزیز کانال هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه با شما هستم با یه داستان دیگه داستان این قسمت هست مرد روستایی و سلطان در یک شهری یه سلطانی زندگی میکرده سلطان هر روز برای شکار با افراد دربارش به صحرا میرفته روزی از روزا سلطان صبح زود از خواب بیدار میشه و به شکار بره و در دروازه شهر با یه مرد روستایی که بد و بد بوده برخورد میکنه آخه تو قدیم ما هر شهری چند تا دروازه داشت این دروازه ها تو روز باز و تو شب بسته میشدن پادشاه بعد از یه خندهی بد و بی جایی که میکنه از مرد روستایی سوال میکنه مرد روستایی میگه برای خرید به شهر اومدم سلطان میگه چون در اول صبح با این قیافه بد و زشت روگرو شدم تو رو بازداشت میکنم اگر شکارم خوب بود آزاد میشی اما اگه شکار نکردم جانتو از دست میدی مرد روساییم به ناچار قبول میکنه تا ده ساعت اون زیر یه درختی دستبسته میمونه سلطان به شکار میره و اتفاقا شکار چاق چلهی هم گیرش میاد و بر میگرده به شهرش وقتی که داشته وارد میشده چشش به مرد روستایی میفته، سلطان به طرف طرفون میرو میگه تو آزادی چون من شکار خوبی کردم. روستایی میگه الحمدلله که شکار خوبی کردی و باعث مرگ من نشدی اما سوالی دارم. اولین که صبح وقتی منو دیدی گفتی مرد بد قیافه و بد شکل و نامبارک و به شکار رفتی. اما شکار خوبی گیره اومد. اما من با تو که برخورد کردم ده ساعت زیر این درخت درگیر بودم بسته شده بودم. حالا انصافاً چه کسی نامبارک بوده؟ من یا تو؟ پادشاه عصبانی میشه اما عصبانیت رو میشکنه و میگه من به تو احتیاج دارم تو به درد من میخوری سلطان به مرد روستایی یه کار و مقام خیلی مهم میده و اونو ندیم مخصوص خودش میکنه به طوری که مرد روستایی همیشه پیش اون بوده اما درباریان وزیران وکیلان از این کار سلطان خیلی ناراحت میشن و حسادت میکنن و تصمیم میگیرن که علیه مرد روستایی توتعی را بندازن روزی مرد روستایی رو دعوت میکنن و در غذای اون سیر خیلی زیادی میریزن قرار بود مرد روستایی بعد از اون غذا بری پیش سلطان چون سلطان از بوی سیر خیلی بدش میومد و بوی دهن مرد تا چند متر معلوم بود برای همین مرد روستایی دستمال جلو دهنش میگیره تا سلطانو اذیت نکنه و ناراحت نشه اما از طرف دیگه وزرا تو پنهانی به سلطان میگن که مرد روستایی از بوی دهن شما بدش میاد برای همین دستمال جلوی بینی خودش میگیره وقتی مرد روستایی اومد سلطان اون چیزی رو که شنیده بود از نزدیک به چشم خودش میبینه که مرد روستایی دستمان جلوی دهن و بینی خودش گرفته سلطان عصبانی میشه و جلسه رو خیلی با عصبانیت ترک میکنه و به اتاق کارش میره نامه برای جلاد مینویسه که به محض رسیدن نامه سر این مرد رو که نامه رو آورده تنش جدا کن بعد نامه رو مخ میکنه و میبنده و به مرد روستایی میده مرد رستایی نامه رو میگیره که ببره از پیش سلطان که بیرون اومد یکی از وزرا جلوی اونو میگیره و از اون میخواد تا نامه رو به اون بده اما مرد روسایی قبول نمی کنه و میگه این نامه حاصل عمر منه حقوق و درآمد من تو این نامه نوشته شده سلطان اونو به من داده و خودم میبرم اما حرفای مرد روسایی فایده نداشته همون وزیر نامه رو میگیره و میبره جلد به محض خوندن نامه به همکاراش میگه این مرد رو به قفسه برسونید اما وزیر میگه این نامه مال من نیست مال یه نفر روستاییه جلاد به این حرف توجه نمیکنه و سر اونو قطع میکنه مرد هم با خیال راحت به روستا برمیگرده چند روز بعد سلطان از روستای پیرمرد رد میشده چشش به اون میفته دست به چشش میکشه که شاید داره خواب میبینه ولی میبینه که واقعیته. پیرمرد صدا میذاره می پرس مگه نامه رو به جلاد ندادی گفت نه یکی از وزیرا بردش و کل رو تعریف میکنه و بعد از اینکه خیلی صحبت زیادی بین سلطان و مرد روستایی صورت میگیره سلطان از هیله وزیراش با خبر میشه اون وقت میفهمه که مرد روستایی هیچ گناهی نداشته اینه که دوباره اونو به ندیمی خودش قبول میکنه خب دوستان عزیز این داستان رو شنیدید امیدوارم که خوشتون اومده باشه ممنونم که منو تا آخر همراهی کردید تا داستان بعدی خدا نگهدار سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی